غنیمت این اینکه فقط بیشتر از این یادم بیاد، حقیقت حقیقت دلم میخواد فقط همین یادم بیاد. سلام علی سخابی هستم امروز دوشنبه 25 بهمن 95 با برنامه دوم پادکست 822 و22. خیلی ممنون که برنامه اول گوش کردید عضو به کانال تلگرام شدید و به 8۲۲ ع علی سخابی.com ایمیل فرستادید. بعضیاتون هم کامنت گذاشتید روی وبلاگ به نظر میاد که یک طیفی از مخاطبین که تعدادشون زیادم نیست دارن علاقه میشن یا حداقل یک علاقه اولیه نشون دادن ایدئال اینه که این تعداد کامنت ها و ایمیل ها این زیاد بشه که من فقط راجع به صحبت کنم این کار, کار منو خیلی راحت میکنه اولی خب ممکنه کیفیت پادکست رو بیاره پایین یا نمیدونم ممکنه هستم باعث تموم شدن پادکست بشه دقیقا همونجوری که تدریس من توی مؤسسات آموزشی تموم شد من زمانی که کار تدریس هم شروع کردم برای دو سه ترم اگه اشتباه نکنم ترم اول خیلی نگران بودم که زمان زیاد بیاد به خاطر همین کلی مطلب آماده می کردم شاید برای دو ساعت کلاس به اندازه پونزده ساعت مطلب آماده میکردم و بازم می ترسیدم که زمان زیاد بیارم به خاطر همین اگر کسی اون اوایل کلاس سوالی می کرد یا چیزی رو نمیفهمید اینقدر در اون و هاشیه اون توضیح میدادم که کل کلاس میرفت برای اون سوال و همه مطالب من ناگفته میمون ولی من خوشحال بودم همین برام کافی بود که زمان زیاد نیارم. این پادکستم هم تقریبا همین جوری الان یه همچین حسی دارم تازه الان شده یک دقیقه و 59 ثانیه و دو دقیقه و این زمان پیشی رو, رو من نمیدم در مورد چی باید صحبت بکنم به تین چیزی که میتونم در موردش صحبت بکنم ترسامه یا ترسایی خیلی شدید که بهش میگن فوبیا چند روز پیش پدر خانم به من سه تا چک داد که به دلیلی میخواستش که یه نفری یه نفری که هم فامیلی خودش نباشه این رو ببره بانک و نقد بکنه و چکام از دوتا بانکی بود که من واقعا متنفرم پا توش بذارم به خاطر اینکه خیلی وحشتناک کسومر سرویسش اسمشون رو نمیارم شاید بتونن از من شکایت کنن اگه اسمشون رو بیام اولین اتفاقی که میفته تو این دوتا بانک یا بانکایی شاید مشابهی هم داشته باشن اینی که برای هر کاری شما باید یه فرم, فرم پر کنید فرم درخواست و سند صدور چک بانکی فرم وصول چک فرم نمیدونم درخواست چک بین بانکی هر چیزی و این فرما کلی اطلاعات اضافه داره آدرس من, من نمیدام هنوز چرا آدرس میگیرن روی این فرم و شما اگر اگر این آدرس برای تایید شما چجوری میخوان ش... واقعی بودن این آدرس رو چک بکنن یعنی شما اگر هر آدرسی بنویسی مثلا اسم خیابون رو از شهر تهران بنویسی اسم کوچه رو از یه شهر دیگه اسم محله رو از یه جایی دیگه پلاک رو عوضی بنویسی هیچ مکانیزم چکی وجود نداره از این بدتر کود پستیه که خدا میدونه یه عدد چند رقمیه اگر کانادا که دومین بزرگترین کشور دنیا است با 6 رقم میشه بهش کد پستی داد به خونه ها ها چرا ما به 18 رقم حالا نمی دونم 11 رقم چقدر نیاز داریم که کد پستی داریم مگه دی ان ای آدمام تو کد پستیه چه کسی میتونه این تعداد ارقام کد پستی رو حفظ بکنه و بعد که همه اینا یه جایی لینک شده به شماره ملی که خود اون اصلا عدد کوتاهی نیست و شما همه جا باید با کارت ملی کارره بانکی بکنی و کد ملی تو بنویسی، چرا نیاز هست که علاوه بر اون کد ملی این همه اطلاعات اضافی بنویسی، نام و نشانی و تلفن درخواست کننده، کد پستی، علاوه بر این بعضی از فرمان نام پدر هم میخواست و شماره شناسنامه و شماره سریال شناسنامه من همیشه از وقتی یادم میاد پر کردن فرم لرزه به تنم انداخت یعنی میتونم بگم فوبیای پر کردن فرم دارم که به طور مختصر میشه گفت فرموفوبیا این فرموفوبیا یکی از دلایل گریز من از هر نوع بروکراسیی که ممکن منجرشه به گرفتن وام بانکی، ممکن منجر شه به گرفتن یک یک تسهیلاتی، یک چیزی که شاید وایسادنی توی یه صف انتظار و پر کردن یه سری مدارک باعث گرفتنش میشه. من تا الان، تا الان هیچ کدوم اون چیزا رو نگرفتم به خاطر اینکه فورموفوبيا داشتم. و بعد که این چه رو گرفتم و برای اون وقت شما مثلا میخوای 17 میلیون تومن رو از بانک اکس که همه میگن همه حساب های دولتی اونجاست و خیلی از بازاری ها با اون بانک کار میکنن و اینا از این بانک 17 میلیون تومن رو میخواد ببری به بانک خود که یه بان... بانک خصوصی جدن تاسیس شده دیزاین داخلیش خیلی شیک که خیلی خلبت از شما اسم و اسم میخواید ولی آدر این چیزا نمیخواد حتی شماره ملی نمیخواد فقط کافیه شماره حساب تو, تو اون شبه اون شوبه بنویسی اسم تو بنویسی و بعد بقیه کار تا انجام بدیم چون چون همه چیزای دیگه وصل میشه به این شماره حساب و اطلاعات شما اونجا هست چه لزومی داری که این همه اطلاعات ریداندنت یا تکراری شما رو این فرما بدی کاغذ حروم کنی وقت حروم کنی تا اینکه بتونید یه کار بانکی ساده انجام بدی آهان و بعد برای انتقال یه همچین مبلغی اگر شما پول نقد بگیری یعنی اگر 17 میلیون تومن پول نقد به فرض اینکه اون بانک داشته باشه بگیری کارموز نداره شما میتونی 17 میلیون تومن یا 170 میلیون تومن تقاضای پول نقد بکنی قانون این رو باید به شما بدن و این هیچ کارمزدی نداره ولی اگر بخوای این پول رو به واسطه ی... یعنی به ب... به با داشتن یک شماره شبا به یک حساب دیگه ای توی یه بانک دیگه ای منتقل بکنی حتما باید تو اون, حس... تو اون شبه یه حساب داشته باشی که اول چه که شما نقد بشه بری توی اون حساب و بعد بتونی از اون حساب تقاضی انتقال بین بانکی بکنی حالا پایا شبا نمیدونم هر کفت و زرمانی. اگر حساب نداشته باشی که خب همه آدم تو همه بانک ها که حساب ندارن قاعدتا من که اینجوری من فقط توی یه بانک حساب دارم اون وقت شما باید که بین بانکی بگیری؟ یعنی خود بانک نمیتونه این پول رو مثلا توی حساب واسطی توی حسابی که مال خودش منتقل کنه و از اون انتقال شبا بزنه به حسابی که شما توی بانک زد یا وای داری این کار شدنی نیست شما باید یک چک بین بانکی و برای اون دوباره باید یک تقاضا بدی یه فرم پر بکنی شیش هزار تومن هزینه بدی و یه ده دقیقه اضافه بشینی تا یک برگ چک کاغذ مصرف فشه یه مقدار جوهر یه چسب روش این چک رو به شما بدن و اگر از ساعت یک بعد از ظهر گذشته باشه این چک نقض نمیشه میره برای فردا باورتون میشه که ما یک همچین مشکلی داریم و بعد اون وقت میلیون ها یا شاید میلیارد ها این بانک ها هزینه میکنن که اینترنت بانکینگ رو روی بیلبورد شهرها تبلیغ بکنن که شما نیازی نیست از خونه بیایین بیرون میتونین اینترنت بانکینگ انجام بدین. ولی فرماشون یعنی فرمایی که شما باید پر بکنید تا یه کار ساده رو انجام بدی هنوز مال اون هفتاد سال پیشه چرا فرمای بانک ها پیشرفت نمیکنه؟ نمیدونم. شاید چون که دوست دارن. یکی از دوستان میگفتن بیزنس کاغذ توی بانک‌ها بیزنس خیلی خیلی مهمیه این هر چقدر کاغذ بیشتر مصرف بشه برای بانک سوداوری داره من من دیتیلش رو نمیدونم در هر صورت من سه تا چک بین بانکی گرفتم و رفتم توی بانک خودم و اونجا مجبور شدم یه دونه فرم دستور وصول چک پر بکنم خوشبختانه اونجا فقط باید شماره حساب همونیشتم هم و اسم دیگه آدرس و کود پستی و شماره شناسنامه و نام پدر و اینا نیاز نبود تا اینکه بعد از هفتاد و دو ساعت ما موفق شدیم که این پول ها رو توی حساب خودمون ببینیم و بعدم منتقل کنیم به حساب پدر محترم یه جایی می‌خوندم که این ترس از یا انزجار از بوروکراسی و صبر کردن در یک پروسه‌ای که تحت کنترل شما نیست تا دیگران تصمیم بگیرن که شما واجد شرایط گرفتن یه چیزی یا دادن یه چیزی یا یه سری مراحل قانونی هستی این به دوران بچگی برمیگرده و اینکه در طی سال‌های ما نیاز به هیچ کدوم از این کارا نداشتیم فقط به صرف اینکه ما چیزی رو میخواستیم یکی دو نفر بودن که این خواسته ما رو برابرده بکنن و هیچ بروکراسی نداشت هیچ فرمپور کردنی نداشیش، تقاضا دادنی و مدارک دادنی نداشت این, این مدارک دادن هم خیلی سخته یکی از چیزهایی که به فوبیای من دامن میزنه یعنی هر چیزی که نیاز به تکمیل مدارک داشته باشه کافیه که من بخیالش بشم حتی اگر گرفتن چه میدونم بیایی خونه رایگان در یه جای خیلی خوب شهر باشه صرف این که مدارک من مثلا ده تا مدرک رو تهیه بکنم و لیست مدارک رو اتچ بکنم به یه ای فکرش برام ما دهنده است این رو خیلی از روانشناس ها میگن که به خاطر اینی که احتمالا در بچگی آدم میتونه خیلی لوس شده باشه خاصش به طور نامحدود و به طور و برآورده شده باشه و این آدم توان صبر کردن در دنیای واقعی و تعامل با دیگران که خاصه هاشون لزومن همراسته و خواسته شما نیست رو نداشته باشه نمیدونم اول جمله با آخر جمله میخونه یا نه من فعل درسته بکار بردم در هر صورت من فرموفوبیا دارم این ممکنه به دوران بچگی برگرده علاوه بر این فرموفوبیا در دوران بچگی خیلی چیزای دیگه هم ممکنه برای آدم داشته باشه همون شب ما یه مهمونی دیگه بودیم یعنی همون شبی که من توی بانک سه تا چک گرفتم و یه خانمی داشت میگفتش که خیلی از اخیراً از بچه‌هاش میگه که زمانی که به یه مشکلی برمی‌خورن به پدر و مادرشون شکایت می‌کنن که چرا ما رو آوردی این مسئولیت توی که ما <تص> فلان چیز رو ندارین یا فلان مشکل رو ندارین تو چرا فکرشو نکردی که وقتی نمیتونستید چون این شرایطی رو برای ما فراهم بکنی ما رو به دنیا آوردی خیلی تکوندهند از همچین چیزی یعنی شما بامانی پدر و مادر بچه تون برگرده به شما بایی که چرا فکر امروز رو نکرده بودی شما چجوری میتونستین 15 سال، 20 سال، 25 سال، پنج سال قبل به همچین چیزی فکر کنین مگه اصلا شما با, با فکر کردن یه همچین تصمیمی گرفتیم به نظر میاد اولین چیزی که پدر و مادر باید همهت کنه در تربیت بچه،شینی که تصمیماتی که برای فکر و پلانینگ گرفته میشه تا و تصمیماتی که بر سر ایمپالز غریزه و نیروهای بزرگتر از ما گرفته میشه رو تمیز بده یک بچه یعنی باید به بچه کمک کرد که بفهمه چه تصمیمایی هستش عمدتاً هرچند که لزومند واقعاً هیچ تصمیمی نباشه که همه چیزش بر اساس پلانینگ و فکر و منطق باشه ولی خب توی طیف اگه بررسی بکنیم ممکنه یه تصمیمی 80 درصد منطقی و بر اساس برنامه‌ریزی باشه و یک تصمیمی بیشتر بر اساس ایمپالس غریزه خواسته های احساسی و هیجانی اون لحظه اگر یه بچه اینو بفهمه اون وقت شاید راحت تر بتونه با مسائل و مشکلاتش دیل بکنه و اینکه در یه شرایط نیاز داره که یه فرمی رو پر بکنه یه سری مدارکی رو الحاق بکنه و یه دو سه سالی صبر بکنه تا واجد شرایط گرفتن یه وام شاید خیلی کوچیک بشه در هر صورت فرداي اون روز ما رفتیم شمال، رفتيم زرخشت و قبل از اين كه بریم من رفتم سوپرماركت دم خونمون که یه چیزی بخرم این سوپرماركت سوپرمارکتیه که توی میدان تره بار و نه سوپرماركت بزرگ مثل شهروند عمل میکنه نه مثل یه سوپرمارکت بين چیزی بین این دوتاست و من توی صفحه پرداخت سوپرمارکت بودم که چیزا مو حساب بکنم یه نفر یا دو نفر جلوی من بودن و داشت نوبت من میشد که یه آقایی با یه بطری سرکه رفت که سرکش رو حساب بکنه و بره من بهش گفتم که آقا صف باید وایسین شما گفتش که نه من اینو پولش رو میدم میرم من خیلی شوکه شدم اول که منظور این چیه گفتم خب چرا صف فای و ولی اصرار کرد دوباره که نه من پولشو میدم،, میدم میدم میرم من دیگه یه مقدار داشتم از کوره در میرفتم ولی به این اتفاق کردم که بهش بگم که خب ما ما پول میدیم مگه ما بوس میدیم و با شنیدن این جمله برگشت و ته صف که یعنی پشت سر من بود وایس یعنی و چندین چیز اونجا فکر منو مشغول کرد که چرا واقعی اگرم میخواد زرنگی بکنه به اندازه یک نفر یعنی اگر صفه شلوقی بود ده نفر تو صف بودن میکسنس میکرد که بخواد زرنگی بکنه و خارج از صفه ولی برای یک نفر چرا خواهش رو خراب کرد مهم از این این بود که بعد از مدتها حس کردم که دارم نایستر عمل میکنم یعنی یکی از پروژه های شخصی من توی ماه های اخیر اگر نگم سال های اخیر اینه که آدم نایستری باشم زمانی که یه نفر بدون نوبت میره توی صف که سرکش رو حساب بکنه و با تمام عصبانیت و ریجی که در من به وجود میاد بتونم اینو کنترل بکنم و استلاحا ابژکتیو بمونم شما اگر بخواین نایس باشین باید ابژکتیو عمل بکنیم یعنی که در اون لحظه ببینین هدفتون چیه و عصبانیتتون رو و تعامل عصبانیی که میخواین با طرف مقابل داشته باشین رو محدود کنین به اون ابژکتیو و اون هدف چون این تعاملی نمیتونه بی هدف باشه و اگر از نایس بودن خارج میشه ببینید یادمی که کار ناراحت ای کرده میخواد در عین حالی که از حق دیگران رو ضایع بکنه در عین حال با وقاحت تمام کارش رو توجیه هم میکنه و توجیهش هم بسیار احمقانه تر از کاری که میخواد بکنه میگه که من اینو پولشو پولش رو میدم میرم یعنی اگر میگفت من عجله دارم یا میخوام این سرکه رو برم مثلا بدم یه نفر بخوره وگرنه میمیره من کاملا قبول میکردم. ولی دلیل اینکه من پولش رو میدم میرم بسیار توهینامی و بسیار زننده تر از اصل کار بود من تو لحظه تمایل داشتم همه اینا رو بهش بگم <تصفح> ولی هدف من این بود که سر نوبت, من، سر نوبت خودم پولمو بدم و از اون مغازه برم بیرون اون سپرمارکت برم بیرون هیچ هدف دیگهی به شکل منطقی بر من مترتب نبود هدف من این نبود که به این آدم ثابت کنم آدم بیشوریه هدف من این نبود که به این ثابت بکنم نوع پایمال کردن حقوق دیگران در اون لحظه از جانبون منطق و احمقانه است هدف من در این نبود که بفهمم چرا میخواد سرکش رو پولش رو بده و بی از سوپرمارکت بره بیرون هدف من این بود که با یک تعامل مینیمم نه مینیمال <تصفح> مینیموم یعنی با حداقل چیزی که میشد من به اون بگم و اون به من بگه دعوایی پیش یا توهینی، اتفاق نیافته چیزی که من در سالهای قبل اه اه به میزان زیاد تمرینش رو داشتم و میتونستم اون لحظه کاملا شخصیت این آدم رو جلوی بقیه آدم که اونجا بودن خورد بکنم. جالبتر از اون اینی که وقتی برگشت تحصف یعنی پشت سر من وای سات گفتش که با صدای آهسته تر شما خیلی آدم با معرفتی هستی از نوع حرف زدنت معلومه کاملا واضح خود که اینو به کنایه داره میگه و کار دیگه ای که من در جهت نایس بودن کردم این بود که هیچی جوابشو ندادم یعنی همین که اون رفته بود پشت صف... یعنی صف قرار گرفته بود پشت سر من همین برای من کافی بود من به هدف خودم رسیده بودم و مطمئن بودم دیگه هیچ کلمه ای نمیخوام بین من و اون آدم رد بدل بشه م. کاملا بسته بودم در تعمل رو درهای تعمل رو و تصمیم گرفته بودم که ساکت بمونم تا لحظه ای که اونجا برم بیرون به نظر من این کار میکنه یعنی روش کار میکنه آدم, میتونه این آدم مثل من میتونه اینجوری نایستر بشه میتونه در جامعه وجهه بهتری پیدا بکنه من اینجوری دارم رو خودم کار میکنم شما رو نمیدونم بعد از این خرید رفتیم شمال بعدش رفتیم شمال و هوا سرد بود همس... همسایه ما که عمدتا تنها کسیه که ما اونجا باش معاشرت میکنیم و کلن سه تا همسایه اونجا ما بیشتر نداریم فردای اون روزی که رفتیم اومد در زد و در حین چای خوردن از صحبت مختلفی که کردیم یکی از داستانهایی که تعریف کردین بود که چند روز پیش با یکی از اهالی اونجا یک گوسفند کشته بودن و گوشتش رو تقسیم کرده بودن این این روش رایجی که اهالی اونجا به جای خریدن گوشت از قصابی انجام میدن یک گوسفند رو میکشن و گوشتش رو تقسیم میکنند. بعضی وقت هم تعدادشون زیاد باشه با یک گوساله این کارو رو این این کاملا رایجه ما که یه مقدار کنشکاوی نشون دادیم در این زمینه گفت که دوست داشته باشین من میپرسم براتون من دارم میرم پیش همون بابایی که باهاشین کار کردم گفتیم اکی بپرس یک ساعت بعد تلفنمون ما زنگ زد و گفتش که من ازش پرسیدم این قیمت گوسفند و این اگه دوست داشته باشین این کار رو براتون میکنم ما گفتیم باشه راجبش فکر میکنیم دو ساعت بعد اون آدم دم در خونه ما بود و دیگه شکارش میتونستیم بکنیم اومد تو نشست و یکی از احالی اون روستاست شروع کرد به صحبت کردن تقریب میشه گفت جز محدود آدمایی که بدون نفس کشیدن و نانستاب سه ساعت میتونه صحبت بکنه یکی از داستاناش این بود که پسر جوانش رو توی تصادف از دست داده بود تصادف هم نمیشه گفت پسرش داشته یک عروس و دامادی رو از روستا میبرده به یه روستایی دیگه ای برسونه بعد از عروسی دو سه نفر دیگه هم تو ماشینش بودن این پسر گوای نامه نداشته یا اگرم داشته تجربه رانندگیش خیلی کم بوده خیلی جوون بوده تازه از خدمت اومده بوده بعد که داشتن میرفتن و سطح راه بچه که تو ماشین بوده در ماشین رو باز میکنه و میافته بیرون پ پرت می کنه بیرون و مادرش میخواست مادر بچه اونم بره بیرون که دنبال بچه در حین اینکه ماشین داشتن حرکت میکرده راننده که میاد در ماشین رو ببنده در حین رانندگی ماشین میره تو در راننده ماشین که پسر این بوده و بقیه سرنشین ها به جز یک نفر یعنی چهار نفر از سرنشین ها اگه اشتباه نکنم همه فوت میکنن که اینگه یه حادثه خیلی تراژیک بود برای اون آقا که قادرتان هم بوده و یه نیم ساعتی در مورد این صحبت کرد در مورد خاطرات کار کردنش که 40 پنجاه سال پیش اومده بود تهران جوشکاری میکرد و خیلی داستانوی دیگه که نانستاب صحبت کرد تا اینکه رسید به مسئله گوسفند بیزنس جالبی که این آدم ها خیلی بیزنس رو جدی میگیرن یعنی اگر شما کوچکترین اظهار تمایلی بکنید به خریدن چیزی که اونا به فروختنش تمایل دارن و معمولا چیزی به جز گوسفند و زمین نیست تو این کیس یا یا دام به طور کلی گوسفند بوز گوساله و بعضی وقتا محصولات کشاورزی که دارن اگر شما کوچکترین ابراز تمایلی بکنید به خریدنش توی این چند سال به من ثابت شده که تقریبا شانس شما برای کنسل کردن معامله و نخریدنیتون نزدیک به صفره چنان پرسوایژنی دارن یعنی چنان شما رو دنبال میکنن و ترغیب میکنن به خریدن کالا یا خدماتشون که من فکر میکنم ماهرترین ترین در هیچ کجای دنیا نمیتونن این کار بکنم در هر صورت همون لحظه تماس گرفت و فروشنده گوسمند یعنی گلداری که میخواست گوسمند این آقا در نقش بود یعنی کسی که میخواست گوسمند رو زب بکنه و یه نفر دیگه ای در نقش دامدار و فروشنده گوسمند که از همون اهالی هست تماس گرفت و گفت یه همچین گوستفندی با این مشخصات هست که سنش جنسش و کیفیت بزرگ شدن و تربیتش و اینا روی ذره صحبت کردیم و یکم علاقه مندی در ما بیشتر شد یکی دو نفرم تو اعضای خانواده پیدا شدن که حاضر بودن گوشت گوستفند رو شیر بکنن سلاهم و قرار شد که در مرحله بعدی فردا به اتفاق همسایه بریم و گوسفند رو از نزدیک ببینیم اگر خوشمون اومد نمیدونم از چیش میخواست خوشمون بیاد شاید فکر میکردیم مثلا از قیافش بریم گوسفند رو از نزدیک ببینیم و اگر دوست داشتیم دیگه معامله رو تمام بکنیم بالاخره توی زمستون برفی در یه روستایی که شما فعالیت های محدود میشه شاید این بهترین فعالیت یا سرگرمی بود که میتونستیم بر خودمون دست پا کنیم فردا صبح ساعت هشت یه وانت دم در ما بوغ میزد من که رفتم دم در دیدم که این آغاز و گوسپندم پشت وانته خیلی نمیتونستم باش بحث بکنم شدم میتونستم ولی اینکه ما قرار بود بیایم و بریم گوزفند اول ببینیم گذینی کار آمدی به نظر نمی اومد. در هر صورت گوسفند رو با یه فرقون آوردیم توی حیات و من قرار شد که برم یه, یه نردبون بیارم که گوسفند رو بیتونیم ازش آویزون بکنیم وقتی برگشتم سر گوسفند بریده شده و آماده بقیه کارا بود بقیه این داستان مربوط میشه به دیتیل قصابی گوسفند و و لذت بردن از دنبه گوسفند ممکنه ندونید ولی دنبه گوسفند از نظر اونها یک غذای خیلی که وقتی که تازه است و شما اینجا میتونید سیخ کنین و روی آتیش بخوایید و به عنوانی چربی خوب تلقی میشه یعنی اگر شما سنتون بالا باشه کلسترول داشته باشین یا چربی خون هر چیزی و دنبه گوشتند تازه کباب شده روی آتیش هیچ ضرری برای شما نه تنها نداره بلکه کلی هم ممکنه سلامتی سلامتیتون بشه در حوادث باز اینکه این, این آقا اون گوشتند رو پوستش رو کند و یه،, به یه قطعاتی تقسیمش کرد به همراه اون همسایه‌مون که بیشتر از 75 سال سن داره اون آقا نزدیک 60 سال سنش بود <تص> من برای شما آتیش درست کرده بودم که اونجا گرم بشیم چند تا سیخ از ما گرفت و این دنبه رو سیخ کرد و روی دنبه روده گوسفند رو که همونجا با دست خالی کرد بدونین که به شوره پیچید مثل, مثل نوارچسبی که روی سیم برق ممکنه بپیچین این روده رو پیچید و روی آتش که کرد در حینی پیچیدن این روده من میدیدم که قسمتی از محتویات روده که خوب پاک نشده بود میزد بیرون ولی کاملا اوکی بودن اینا که چقدر این چیز خوبیه و فوایط خیلی سیادی داره من, من نخوردم من شاهد این فیست اینا اصطلاحا اونجا بودم که این دنبرو خوردن و آها یه اتفاق دیگه ای که قبل از این ماجرا افتاد یعنی زمانی که یه بریکی بود بین این قصابی همسایی ما به من گفتش که نه، من چند نهال زیتون که اونجا کاشتم اینا به شکل نامنظمی پارسال یه در شاخه ازش رشد کرده بود گفت اینا رو باید الان هرس بکنی که خب به نظر حرف منطقی میموند من رفتم یه قیچی آوردم که با قیچی اینا رو بکنیم یکی دو هم با قیچی زدم ولی در عجله‌ای که داشت که چند تا از اینا رو با دست شکست و این دوباره عصبانیت و ریچ شدیدی در من به وجود آورد و امتحان دوباره برای نایس بودن من یا نایستر شدن من شما اگه یه نهال کاشته باشید میدونیم که بعد از یک سال دو سال چقدر رشد شاخه هاش برگاش تنش همه جاش برای شما مهمه و اصلا دوست نداره که اینا نفر بخصوص در حضور شما بجا اینکه با قیچی چند تا از شاخه هاشون شا هرس بکنه بشکنن من که نسبتا با ملایمت اعتراض کردم که چرا این کار میکنید بذا با قیچی این کار بکنیم گفت نه اینا تورده نیازی نیست میشکنه اولین چیزی که بزنم رسید بگم که خب استخونای تو هم تُرده تو این سن و میشه شکستش خب هر چیزی که بشکنه نباشه شکست ولی دوباره از این امتحان سر بلند از آب بیرون اومدم و خودم رو ابجکتیف نگه داشتم هدف من در اون لحظه این بود که بهترین و چین درختایی هایی نحالا هرس بشن و هیچ هدف دیگه ای من اون لحظه نداشته باشم. موضوع گرو سعی کردم صرفا روی قیچی باغبانی شاخه هایی که باید بریده بشه حرس کردن و نشکستنی شاخه ها نگه و ازش به شکل خیلی اسرتیفی بخوام که دیگه این کارو نکنه و ازش خواهش کردم که بردم دمه آتیش و مواظب کباب شدن دنبه ها روی آتیش باشه خلاصه توی همین فرصت کوتاهی که دنبه ها داشتن کباب می شدن چند تا از شاخه های نحالا شکست من توی دو روز میشه گفتش که دو تا امتحان نایس بودن پشت سر هم دادن بگم نموه 20 بیست بود ولی شواهد و قرائن نشون میده که من آدم نایستری دارم میشم خودم از خودم راضیم بد نیست پیشرفتم بد نیست به نظر میاد که این کل داستان هفته گذشته است. خب این داستان من بود در هفته گذشته واقعا نمیدونم تا هفته دیگه چی پیش بیاد ولی بالاخره یه داستانانی خواهد بود که تا هفته بعد به شما بگم تا هفته بعد با آدرس 822 at ایمیل بفرستید عضو کانال تلگرام پادکست 822 بشید که من عکس شما رو ببینم صرفا به همین دلیل و کامنت بذارید زیر مطلبی که این پست این این پادکست روی وبلاگ من alisekhavadi.com درش منتشر میشه پاکزاد یه خانم یا یه آقا به نام پاکزاد ایمیل فرستاده با سلام و احترام در مورد فرصت برابر یک در مورد همین رانندگی که مثال زدید ببینید بخشیش به دوران کودکی برمیگرده مثلا ممکنه وقتی یک دختر در زمان کودکی بخواد نسبت به اتومبیل رانندگی و کارهایی تو پرانتز به زن بزرگتر را پسرانه کنشکافی نشون بده ممکنه اصلا راهنماییش نکنند نکنن و یا حتی بدتر مورد سرزنش قرار بگیره که چرا به کارهای مردانه علاقه منت هست خب این دقیقا یعنی که بهش فرصت برابر نمیدن چون دختره حالا دو حالا واقعا چه دوزمی داره؟ حتما خانم ها همه, همه کارها رو یاد بگیرن خب راننده خوب نباشن چه مگر بلدند. یا حتی طبقه بندی درست ظروف در کابینت به نظر من این هم است که خانومها ها بهتر بلدن چون به آقایون فرصت کافی برای یادگیریش داده نشده فکر میکنم علاقه به داشتن فرصت برابر در حال حاضر یکی از مشکلات اجتماعی هست که باعث مشکلاتی در خانواده ها شده صد درصد عملش زودتر از فرهنگش اومده یعنی تربیت جامعه ما هنوز سنتی است ولی می رفتارمون اروپایی باشه من که کم کم دارم به این نتیجه میرسم که برای خانومها شغلی بهتر از خانداری نیست واو این دیگه خیلی رادیکال بود برای خانوم ها شغلی بهتر از خانداری نیست واقعا من بهتر در مورد این کامنت ندم فعلا. سه در مورد اینکه که فرمودی دوست ندارید زمان صحبت کردنتون رو با کسی به اشتراک بگذارید وقتی این حرف رو خیلی خندم گرفت واقعا جمله جالبی بود کجاش شده خیلی از مدیران هم این اخلاقو دارن خوب در واقع هیچ کس دلش نمیخواد ولی من فکر میکنم صبوری در گوشتادن حرف های به قول شما حال به همزن و ناپخته تمرین خوبی هست البته شما مطمئنن با توجه به کچ بودنتون شنوندی خوبی هستید شاید این حرفتون که نمیخوایید به حرفهای نامرتبط گوش بدید فقط نکوهش یک رفتار نابجای اجتماعی است نه اینکه نتونید شنیدن این حرف رو تحمل کنید من نگفتم اصلا نمیخوام گفتم بعضی وقتها هست که میخوام فقط خودم حرف بزنم حرفم قد نشه و حرفهای چرند نشنوم فقط بعضی وقتها بیشتر وقتا این مهارت رو دارم این توانو دارم و اصلا هم برام مشکلی نیست و این پادکستون بعضی وقتاست چهار بابت موضوع عدم فعالیت که فرمودید متاسف شدم ما هم دو شرکت ثبت کردیم و برای هر دو عدم فعالیت زدیم البته به خاطر نداشتن فرصت نابرابر نبود امیدوارم اوضاع کسب و کار مملکتمون بهتر بشه و دیگه هیچ کس بیکار نباشه همه خب مگه اوضاع کسب و کار مملکتمون به خاطر عدم فرصت‌های نابرابر بد نیست. فرصت‌های نابرابر در سطح جهانی منظورم. 5 در مورد اینکه نظر مخاطباتون رو راجع به نداشتن فرصت برابر خواستید بدونید، من فکر می‌کنم من فرصت‌های زیادی داشتم و دارم که خودم ازش استفاده نکردم. یعنی فرصت‌ها و هایی که همیشه برای من پیش آمده همیشه بیشتر از اندازه‌ای بوده که از دیگران می‌شنوم. بنابراین شکایتی از این موضوع ندارم با تشکر پاکزاد چقدرم عالی که شما شکایتی ندارید شنونده بعدی محمد سلام بزرگوار خوشم نمیاد خوش نمی از این بزرگوار سلام بزرگوار پادکست شما رو شنیدم دو پیشنهاد یک اردو بذارید به یک جای نه نخیلی دور تا کمی دوره هم باشیم و فرصت برابر برای حرف زدن داشته باشیم. هزینهش را رو هم برابرد کنید. شما ذهن خلاقی دارید پس بهتره دوباره با تشکل دوباره با تشکیل یک تیم کوچولو کار خلاقانی رو به صورت واقعی شروع کنید. واقعا یک اردو بذارم جای نه خیلی دور. خب چه جایی هست که برای همه نه خیلی دور باشه، یه جایی که برای یه نفر خیلی دور نیست، برای یه نفر دیگه ممکن خیلی دور باشه. فرصت برابر برای حرف زدن الان همه دارن میتونن به آدرس 822 at alisakhawati.com ایمیل بفرستن هزینهش رو هم برابرد کنید هزینی اردو خیلی خواهد بود شما ذهن خلاقی دارید پس بهتری دوباره با تشکیل یک تیم کوچولو که ایمان تشکیلی تیم کوچولو داده بودیم که این بشه دوباره من فکر کنم ایمیلیتون رو باید توضیح بدیم زمنان وبلاگتون موقعی که میخواییم پیام بذاریم پس از چند ثانیه پیام, پیام پایان زمان رو میده و مرتب هنگام ارسال نظر خطا میده به نظرم اکثر مخاطبین وبلاگتون این مشکل رو دارن و از دادن نظر منصرف میشن پس اینایی که پای... <تصفح> نظر میدن چجوری نظر میدن؟ من توی چند ماه گذشته نتونستم نظر بذارم تا اینکه این ایمیل رو گذاشتیم خب یه سری از نظرات ویبلاک رو هم بخونیم و بگیم خداحافظ جالبترین نظری که بود توسط یک نفر که از اسم مستعار ام استفاده کرده بود سلام ام ام. بسیار عالی ام ام. به نظر من واقعا توی پادکست قبلی و مقداری هم توی این پادکست تعداد مکسایی که من داشتم و اهم یعنی ام ام خیلی زیاد بود من منظرت میخوام امیدوارم که تمرین باعث بشه که بتونم کمتر توپاق بزنم و کمتر ام ام بکنم ببخشید دفعه اول پادکست منولوگ اوله و من دارم تمرین میکنم دیگه چی نوشتن وای عالی آقای سخاوتی یکم تعریف و تم تحسین از اینا که بگذریم شما با وجود اینکه کاملا این حس رو منتقل میکنه که آدم هستین با تمام نیازها و ضعف‌ها من من این حس رو منتقل میکنم که آدم هستم چه کسی این حس رو منتقل نمیکنه با تمام نیازها و ها و ها همچنان اصرار دارین که هوش هیجانیتون کمه یا اسبرگر دارین من اصراری ندارم. من, من واقعا می دونم که او شاید جانیم کمه در مورد اسبرگر مطمئن نیستم به خاطر اینکه تشخیصش خیلی کار سختیه تا جایی که من می دونم اگر کسی پیدا بشه که بتونه این رو به شکل کلینیکی تشخیص بده من هنوز علاقه دارم که حالت خیلی مهم نیست واقعا ولی بعضی از نشانه هاشو دارم هیچ اصراری در مورد برچسب زدن به خودم ندارم یه نفر دیگه نوشته که خوب اسکل کردی ببخشید که شما اسکل شدید معذرت میخوام بقیه همچنان لطف دارن و چشم راه این دوشنبه بودن احتمالا چشم راه دوشنبه هفته بعدم خواهند بود ممنون که وقت میذارید و به این چیزا گوش میدین تا دوشنبه هفته بعد اگه چیزی خواستین بگین 822 atalizekhavati.com اگرم نه فقط خدا